خوبوش کنید خیلی مهم حرف مهم میخوام بزنم برای حفظ جان امام زمان به ما یاد دادن از بهترین اصطلاح استفاده کنید وقتی به جان آقا رسول الله حجمی صورت میگیره اونجا وظیفه مسلمان ها دفاع کنه و وظیفه کیه همه مسلمان فلزا اگر امیرالمومنین مومین زخم زخم برمیداره وظیفهش بوده جان امام زمانش بوده باید این پروانه دورش میگشته اونه که فرا کردن باید جواب بدن اما همین پیامبر جایی که دیگه مسلمانی نیست و فلان خدا با موجزه جونش رو حفظ میکنم اوز خونه کعبه خونه کعبه در زمان حمله عبرهه با موجزه حفظ میشه جانه خونه کعبه مثل امام که مثلا کعبه این طرف جریان در زمان حمله یزید به حجاج خدا با موجزه خونه کعبه رو حفظ میکنه یا نمیکنه نمیکنه میکنه. میکنه خراب شه. چرا؟ چون سر مسلمان چه چشنشون کردنده شون نه و اون روزی که امیر در مقابل سیوف اونها در مقابل شمشیرای اونها بهترین شمشیر را استفاده میکنه و این حدیث قدسی میاد که لا فتا الا علی لا سیف الا زلفقار تأکید روی سلاح امیر اگر رسانه رو اون یک سلاح دارید میبینید باید به بهترین سلاح ها رسید یعنی خیر و سیوف بود بهترین شمشیر ها زل بود شمشیری که به نظر بنده قطعا دو شاخه نبود و این یک غلط برداشت و غلط تاریخی که اینجا دشااخهشون میده اصلا معنی فقار یه چیز واضحیه روش اصلا فقطقره ای نیستش نیستشین جمع بسته شده یعنی دو تا اصلا چیز بیشتر حالا اینکه شکلش چجوری بوده اما تونستیم برممنه ترسیمش هم بکنیم رسیدیم بش خب خلاصا این شکلی نبود شمشیر بود که دو لبه بود عرب شمشیرش یه برشه تیز میشه. چون شمشیر عرب قوسدار بود فقط یه طرف شمشیر میزد. این شمشیر نمی‌زد چون نمیشه 20 کیلو آهن اینوری بزنی علی اکبر علیه السلام وقتی میدام میدان میروخت برمیگرده شکایت میکنه میگه یکی العطشو قد دوم چی سغل شمشیر هم میگه سنگینی شمشیر دست من از کار انداخت چون 20 کیلو آهنو بردارید نیم ساعت بزنید توی اون تشنگی و تو اون گرما و سوار بر اصم اون تکانهای اصم واقعا سخته خب فقط امیر بود واقعا میتونست با اون شمشیر پشتم ضربه بزنه یعنی خیلی قدرت بازوی زیادی میخواد این چیزایی که توی محمد رسول الله ساخته شد اونجا نشون را دا این شمشیر میخورد و چرک کنه داستانه خب اما حالا پسوره ای امام زمانی زهور بکنه با شمشیر تا یک امام زمانی هم واقعا بیاد این ها رو واقعی مردم میگن این راست میگه یعنی اثر رسوخ اینجوری نیستش که شما با... فکر کنین چیزی رو ذهن آدم بکاره برای عبد حالا حرفم این نبود ذوالفقار فرنجز باشه پس برس اصلا سر اینه که امروز اون بهترین اصلاح ها رو رسیدیم بهش خودش برسین میگه خب امروز رسانه اصلاحات باید باشه بعد بریم از خود تو هم جنگ غزه همین فیسبوک پدر اینا رو بود. دیگه روز بیستم اینا بود که فیسبوک صفحات ضده اسرائیل رو بست یعنی در یک اقدام ضد رسانه ای و این همبراشون هزینه دراخه، به بنده یه درد داره ننده یه درد داره باز دو سر باخت بعد برایین یاد بگم ت کنیم یه خونرمنده ما یاد گرفته بلد شده باز دو سر باخت بر این رو کنه و دو سر برد برای خودمون و اونا رو همیشه بهدنظرره تو انتخاب بین بد و بدتر اونا در این کار میکنن یه فیلم میسازن باید دختر دبیرستانی ما دست و دست میشه و رو را نیبره کار خودشون میکنه یه مستند مزخرف میسازن نگاه ادهی نساد مددهی نساد به حیاءات نساد به عوض میکنن و این نگاهی که آقا تدافعی بشینیم اون اینا بیاید بیرون همین الان من قبل اینکه این چنتا تا اینجا آماده بشه توی دفتر نشاستون این بشیم صحبت می کنیم با دوستانتون اونجا هست که مثلا نگاهتون رو ندارن تهاجمی ببندید به این حریر سر و پا تقصیر ما دارم. ما همه دارن به قرآن گیراد ایراد می گیرن آوی از استاده بعضی از این استادای نخاله دانشگاهی خودمون گرفته شبه سر کلاس مثلا به قرآن تا اونوریات تو یوتیوب با این ورا اون ورا و فلان این جور چیزا گفتون میبین حالا که قرار کتاب بررسی بشه تاریخی هم که باشه اول با تورات بررسی شه بسم الله آقا. سر جلسه میدونم تورات میذاشتیم باز میکردیم میخوندیم اینا میرین جواب بدید باید یه جواب بدید شوخی نداریم اصلا سیاستتون رو تهادامه منی تو عرض فرهنگی بهترین دفاع حجم است و حجمه فرهنگی ما حجمه نا... براد چه جوری بگم اثر بی انصافی نخواهد بود رو بگید حضرت امیر در جنگ جمل بود یا صفین وقتی کار به ناسز و گفتن بین دو تا سپاه کشید حضرت امیر فرمود انی را الکوم ان تكونوا من الصبابین گفتن دوست ندارم فش بدید رو بگید بعض از این تا صد تو فوش وترارونو دیگه نمیشه دنیا رو رسانه ای که دستشون داره در میره دیگه نمیتونن خب این اتفاق داره میفته یعنی بستر داره فراهم میشه اونی که میخواد بسازه نیست بعد چی میشه تو خود جمهوری اسلامی فیلمساز های ما فیلم هایی میسازن که کاملا به نفع یعنی اگر کلی اونا سعی میکردن که بی فیلم بیارن جایزه بگیره کلاشوار فجر ما با اون محتوا چقدر هزینه میشد مثلا یکی تو داخل داره میسازن ما حد بریم به این سمت و ش این مقدمه رو بعد میگفتم یه نکتهن فقط بگم ببینید ما تو هشت سال جنگ اون حمله کردن خرمشهر رو گرفتن مهران رو اما... گرفتن نمی‌دونم تو غرب و جنوب غربمون ماندن نفوس کردن اومدن داخل و تصرف سرزمینی کردن تا حس رابادان اومدن ارتش دره داغون بود یه دیشون اعدام شده بودند فرار کردن دیشون جاسوس بودن من با خودم ارتشی بود ازش ارتش واژنشاستهس ببین نکنه گارد میگیرین نازدار ارتش سر. نه راست رو بگی یاد گرفتم حق خوددم بگی. خیلیش هم نیروهای خوب تا ارتش سیستم ساختاری فرماندهی داره. بعد اون فرمانش بگی این کار بکن تو این کار بکنه. بعد نیروهای مردمی هم ریختن که هم کل کممون برداش توفنگ چشمه براشتن بر هر چیزی که میرففتن از پادگار ها اگه تو انقلاب توفنگ بلند کرده بودن اومدن وسط جنگ. اومدن تا یه سالیم یه سال اول گیج بودیم. بعد ساختار پیدا کردیم. رفتیم، پس گرفتیم، بعد اون دیگه ایران داره سر زمین میگیره. دقت کنید. استراتژی تعقیب متجاوز. حالا فاو بده رو. حالا علی شرقی علی غربی تو می‌خوایم. حالا اونور حلبچه رو می‌خوایم. ما میایم سمت دار. اینجوری نیستش که فکر کنی یه حمله میکنی می‌کنی میذاری میری. آقا اینجوری نیستش که به سری شوخی رو وا کنی یه شبهی شبهه مطرح کنی. بله حالا که بحث شبهه است باشه این جوابت. حالا ما هم سوال داریم. و جواب بدی. من اینو میبینم، امروز حجمه به ما شده کلیم تلفات داده میدونم خورمشر با خاک اکسان شد، فرهنگی شده هم میگم فرهنگی فرهنگیمون اومدن تا حس آبادن هم رسیده اما من میدونم، بعد اون موقع چیزی چیز امام نیرای مردمی رو خاص که پاشید برید همین اتفاق توی مشهدم افتاد توی بحث سازمان گرفتن فرهنگی خودجوش، جوش خب همین درخواست دوباره توسط رهبران این کشور، شیخ و آقا امام خمینی، اینا فقیه رهبری. که آقا بیاید بسم الله کاری بکنید و یعنی چی؟ بزنید ارتش رو به شما برسونه. ارتش فرهنگی. نه من خاطب حضرت ارشاد و چیو سازمان تبلیغات اسلامی همین چیزا کار فرهنگی متولی امور فرنگیسن الحمدلله تو هر اداره می معاون فرنگی داریم. اینا باید یه جوری ما بریم جلو، علات با منطق و اقلانیت که اونها خودشون رو پشته چی؟ در رستوران حداقل اگه نمیتونن نقش توپخانه ای ارتش تو جنگ داشته باشن که جا رو توپخانه ای بزنن جا که میتونن بدن پول که میتونن بدن اگه هیچ بلد نیستن بسازن ما میسازیم من خودم همین صبحی که داشتیم می اومدیم بچا می روی در به در نزدیک 6 ماه دنبال نسل مادری اون زمان داره میگارم 95 درصد هم حلش کنم برای اولین بار در دنیا اتفاق میفته که آقا ایشون داییاش کیا بودن پدر بزرگش که وقتی حضرت میفرماد بنت یوش... یشوعا جوشا انگلیسیش میشه این یشوعا کجاست کیه من برنی که تاییم همون زمانه اصلا آقا به یه چیزی رسیدیم که انا سوژه ای که بهترین فیلم هست. اصلا اون داستان ازدواج حضرت نرجس خاتون سلام الله علیه و با امام حسن حسیر علیه السلام واقعا این سوچه چیزی علمی تحقیق فراوان ما کسی رو از ما خواسته؟ کار من نبوده که بابونه که تاریخ امامت میخونم توی حوزه بخشوی بدونه اینا من برن کار بکنم ها نکردم ها بزنیم هم تو غریب بمونه میریم بزنیم اونا بیان از ما غلط بگیرن اون غلط گرفتنشون هم خوبه باعثه پخت شدن بحث میشه اما روی بحث دشمن شناسی ببینید من روی مفایم اصلی صحبت خواهم کرد و به چند تا نکته مبنای بحثم قرآن و اطرت یعنی روایات و آیت قرآن و روایاته اما به روز اون چیزی که به در شما بخوره دشمن دو واژه گرفته شده دو کلم هست دوش و من دوش در زبان فارسی یعنی زد دوش نام زد نام دشوار وار وار یعنی جور بودن اوکی مادر فارسیش میشه وار واره ترکی نیست واره یعنی اوکیه خب هموار دشوار یعنی ضده وار بودن دشمن یعنی هر چیزی زده من باشه دشمن من دشمن من خب این دشمن من منو کی با تعریف کنه درست شد؟ یعنی منی با تعریفش که هر چیز باشه میشه چی؟ دشمن این معنی رو ما قرآنی و روایی تعریف میکن. نه من ملی‌گرا، نژادی که من ترک تعریف بشم، هر کی ترک بشه دشمنم. من زده، من بشه من. من ارمنی تعریف بشم، هر من ارمنی بشه بشه دشمن من. فارس باشم، هر کی فارس بشه بشه دشمنم. که اینا همین پانهای مختلف پان ترکیسم و پان عربیسم و پان فارسیسمو ببینید یعنی یکی از ابزار دشمن همینه. من می‌خوام منو قرآنی و روایی معرفی کنم. قرآن دشمنو عروسی کرد. چند دسته دشمن داریم تو قرآن؟ اول خود ابلیس ان له انه لكم عدو مبین این دشمن اصلی که فرمانده لشکر رو بر داره در مقابل ماست و یه سری دو عده داره شیاطین من الجن و شیاطین و من الانس یارانش شیاطین من الجن که توی قای داریم که میگه بخش از اینا ذریاشم هستن نه تا نسبت فرزندی هم واش دارن برخی هم ذریه رو به معنی قومش میگیرن مهم نیست این ها سریع میخوام بگذرن اون این روز تو سینمایی این قربی تو سریالشون تا دلتون میخواد دارن از این چیز میگن شیاط اینو من ال انس این هم داریم قرآن اینا رو تعریف میکنه. کفار مشرکین منافقین بعضی رو یه جور دیگه تعریف میکنه. یهود نه تجدن نشددن ناس اعدا و تنل ما اصلا یهود و فوبا نداریم هر یهود بیاد ما لودوشم. نه اصلا حرف مییم ما مبنم قرآن روایت. لتجدن نه تا قسم داره. لامش قسمه قسم نون مشددش قسمه. سه بار خدا داره قسم از تعباس میخوره که دشمنترین افراد نسبت به شماها یه روزی میفهمی لا نه یه روزی ذولت میفته اشد الناس الذين امنوا اليهود الذين اشتركوا این جهودا توی قرآن باز اینو بعد بحث بکنیم براتون توی ادامه هم میگه این مسیحی ها دوستتونن ادامه همین آیه میگه ها یعنی این برنامه یه استراتژی داره تعیین میکنه که مسیحی‌ها با ما دوستن یهودی‌ها جای دیگه میگه یهودیت و مسیحیت با شما دشمنه پس این چی میشه؟ اینا بحث بکنم براتون ما یک یهودیت و مسیحیت داریم یک یهودی و مسیحی داریم اینا با هم فرق داره وقتی میگیم مسیحیت مراد سیستم حکمرانی کلیساه سیستم سیاستگذاری کلیساه واتیکان اینا دشمنه لانذ عمر اینا رازی نمیشن تا این که دینتون بردگی. یعنی اون سیستم کلیسایی، اون ساختار و اون سازمان با ما دشمنه، در هیچ شکی نکونید. اما مسیحی ها با ما دشمن نیستن. در مورد یهود که اون سیستم یهودی با شما دشمنه. قرآن میگه پاره جلوتای میگه یهودیان با شما دشمنه اکثرشون یک جای آی قرآن داره میگه قلیلی از اینها اصلا خوبن. که ما امینان یهودیایی که نجات پرس نیستن. قاتل هم انجام نمیدن این کودک کشان نیستن خوب مثلا همین ناتوری کارتا ها. فرقه ناتوری کارت‌ها فرقه ساتمار اینا اصلا اسرائیل هم به رسمیت نمی‌شناسن همینجوی دائم میان ایران رفت و آمد دارن با احمدی نجات خیلی نشست و برخاست داشتن یه فرقه. یه یهودی ارتدوکس هم هستن ما برای اینکه بتونیم سا یه دشمنی رو بررسی بکنیم پس این پلن اصلی بود دیگه من شیطانو گفتم شیطانو من جنو گفتم, گفتم. همینا رو باز خواهم کرد تو این جلسه شیطانو عرض کردیم برای خصوص این یهودیت بد که اسمشو میزه از این بود خواهیم گفت سهیونیزم هر جام دیدی از این یهود رو برنی بد استفاده کنم یعنی سهیونیزم آقا پس چرا تو قرآن یهود یهود من تو مخواه سهیونیز از خود بسازی نه قرآن درست استفاده کرده ما کلمه رو اشتباه استفاده میکنم قرآن در مورد اینا بچه های حضرت اسحاق دو لفظ داره یکی بنی اسرائیل کیچای یعقوب میشن اسرائیل لقب حضرت یعقوب اسرائیل ایل یعنی خدا همه جا ایل میشنوید یعنی خدا جبرائیل کسی که اسیر خداس بنده خداست در جبر خداست گابریل میکائیل کسی که مسئول روزی رسانی ایله روزی دست اونه کیل و میکنه ریشه عربی عبری ریشه یکسان دارن روتشون یکسان ریشاشون همین امثال همالا بگذاریم محل بحثم نیستش فرزندان حضرت یعقوب اینا رو قرامش میگه بنی اسرائیل. منتظر جایی که میگه بنی اسرائیل تو قرام اینا روایت میکنه. یه بنی اسرائیل کار کارو خوب کار میکنه کارو هم میکنه. اما امد جاهایی که میگه یهود فوش میده. دقت کنید ها. امد جایی که داری میگه یهود فوش میده. لعنور به ما قالو، لعنطالله علیهم نمیدونم چیه؟ عبارت ها خیلی سنگین و محکم استفاده میکنه ما با اینا کاردین پس تو قرآن یهود بد بوده مادر سهیونیزم الان بوده بنی اسرائیل هم خوب توشون بوده هم بد حالا نکته که وجود داره اینه که یهودی ها یعنی کسایی که از فرزندان یهود یک دوازدهم یهودی ها یک دوازدهم همه بنی اسرائیل از فرزندان چی؟ مگه عزیزت یعقوب دوازدتو فرزند نداشت خب اینا به مرور زمان تونستن اون دو... یازدهت شاخه دیگر بیارم زیرگرو اسم خودشون و یک الیگارشی از سبت یهودا درست کردن مثل بنی اومعیه که یک شاخه از غرهشه اما بغیه را آورد چکار کرد زیرگرو خودشون خوب نبودن اما الان تو دنیای قرب امپراتوری بنی اومعیه رو میشناسن قرآن خیلی قشنگ یهودو میزنه الان کسی که تو ایران یهودی ایرانی اینو از سبت یهودا نیستن و یهودی هم نیستن لفت کلیمی برای خودشون استفاده میکنن که خودشون مرتبط کنن با موسا کلیم الله اما ما به همشون میگیم یهودی که این استفاده غلطه این باید حل می یه وقت من تو صحبتم از باید یهودی خواهم گفتینا بعد جا میفتد من جلسه بیشتر میخوام روی شیطان صحبت بکنم خب جلسه بعد روی روش های او کار خواهیم کرد صحبت خواهیم کرد و جلوگیری ازش مبنام قرآن حالا اینجا یه خورده نگاه همین جلسه اول استثنایی یه خورده نگاه استورهی میگیرشون لازمش دارید حتما به دردتون میخورد خب چه تو تحلیل فیلم اینا چه تو خودتون برای نوشتن و ساختن بعد میشه. و شطنه شطنه یعنی آزار رسونن هر موجودی که اذیت بکنه شیطان به اسب، به شطور چموش هم میگن شیطانه را به شطور چموش مانمی بچه میگن بچه شیطونی. نکه ابلیس باشه یعنی چون داره آزار میرسونه حتی مثلا میگفتن آقا از کاسه شکسته ترک خورده آب نخوری چی داره اونجا؟ شیطان جا رو آزار رسونه هر چیز آزار رسون میشه ش بزرگ شیاطین که از همشون مهمتر فرمانده یکی از شیاطین از جنس جنه وگرنه ما شیاطین از جنس انس هم داریم یه جایی از شیاطین از جنس جنم از گذرشون بیشتره این اسمش ابلیسه ابلیس برخلاف خلاف که لغویون عرب خیلی دوستان همه چی رو عربی کنن به زور اصلا کلمه عربی نیست هر چیزی رو دیدی که جمع مکسرش فعالل است. این اصلا مفردش عربی نیست مثل فراعنه فرعون عربی نیست پاراام که اصلا کلمه قبطیه صاحب خانه بزرگ اما الان برید سراغ لغویان عرب اینو نشته فرر یعنی فرار کرد نمیتونم از کجا یه یعنی داستانی میسازن اینا اومدن ملایر وقتی توی فوتواتی که داشتن اومدن ملایر بعد دوستاشون کلمه ملایر هم یه عربیش کنن حالا ملایر مال تو ریشه زبان کردی یعنی خونه آیر یا آگر یا آتر یا آزر یعنی آتش مال آیر یعنی آتش خانه خانه آتش اینا کردنش اینو مالایورا مالایورا یعنی جایی که آب دیده نمیشه برایش ملر تا دلت میخواد آب داره یعنی این چیزا رو نباید توی این بحثا گیر کرد یکی از کلمه های عجیب غریب توی زبان شناسی که تو عموم های علل خصوص فرهنگ بین النهرینی و حتی همسایگان بین النهر مثل ایران و مصر عجیب خوب چرخیده همه جا شیطانه شیطانه امیره تو انگلیسی میشه چی؟ سطنه سیطن همون شیطانه حالا نکته اینجا رو داشته باشید خود سطنه از چی ریشه گرفته شده؟ برخی شطانه رو که رفته به زبان چون ببینید ابری ها سهار رو میکنن تو زبانشون مثلا سلام هم میگن شلوم سلیمان هم میگن شلومان خوب موسی میگن چی؟ موشه؟ بعد اینا خیلی شیعه میکنن. این سطانه رفته به زبان عبری شده شاتانه که 2500 سال پیش که اینا ایران بودن. 2500 تا 3000 سال پیش که اینا ایران بودن. مکنی جالب شما بگم. در کتاب های بنی اسرائیلی از زمانی که اینا میان ایران کلمه شیطان میاد. و برخی از تاریخ نگاران میگن اصلا اینا مفهوم شیطان اکی گرفتن. از ایرانی ها. چرا ایرانیا شبیه واژه شیطان مرخص تعریف شده بوده. منو من نه من تایید می نه رد. تا یه حدی تایید میکنه اما این که در آینه یهود شیطان تعریف نشده این چرت و پرته. اینا قبول ندارم. چون بعضیا هستن اطلاعات تاریخی دارن، بعضی اطلاعات دینی دارن. این دوتا کنار همدیگرن متصفا ندارن. اینا اونا رو رد می‌کنه. بعضی میگه این واقعا با هم یه کیه؟ مشترک. ساتانا همونی که ما بهش ستون تو فارسی. ریشه زبان انگلیسی و فارسی هند و ما اشتراک زبانی خیلی کلمات زیاد داریم ستون و تو اون زمان ستون میسازن، می ساختن برای شیطان برای پرستش خدا، برای شیطان به شکل ستون که انا همی دنیا خیلی ساختن نمی نمی کنیم این یک ریشه ستنه شتنه شیطان سیطان هاشتیتن تو زبان از عزازیله یعنی عزیز خدا همین کلمه که کلم تو عربی هم استفاده میکنن از همین ملیون عزیز خداست و در زبان عبری خیلی مهمه این نکته از زبان عبری و در فرهنگ یهودیان شیطان جن نیست چه فرشته است فرشته است و فرشته خیرخواه و شما تو این سریالایی که اینا ساختن همیشه جنگ بین این فرشته ها رو بینید دیگه که جبریل همیشه بعد این ماجرا میشه میکایل یه خورده این ورطره میکایل روزه دوست داره برسونه جبریل بده. جالبه تو قرآن هم قرآن میگه این یهودیه با چی مشکل دارن؟ با جبرئیل. میگه این جبرئیل خیلی بده به پیغمبر گفتن بگو کی به تو وحی میکنه قرآن تو. اون جبرئیل گفت اگه میکایل وحی میکرد ما میفزیمش. او چرا؟ که آخه جبرئیل فقط بر ما آیه جهاد آورد. احکام جهاد رو جبرئیل می آورد بخور بخور رو میکائیل می آورد. اگه قران می آورد قبول می ادوونل جبرعیل یه یه اودی دشمن جبرعیل بریم سراغ این بحث که داشته مرز میکرم سریعین لغت ها رو میخوام بگم گوشتون آشنا باشه میخونید میبینید تو سریال هاشون میشنوید جای دیگه هم گیریتون نمید به این پکیج به این شکل چون هر کدام اینه جا باز بشه من نمیخوام خیلی دیگه کلاس رو بکنم کلاس رو ترمینولوجی و لغت شناسوی این حرف بوده دیگه ای که از این شیطان ازازین هم ارز کردن خدمت شما بوده دیگه ای که وجود داره از این کلمه گرفته شده یک ای باز دور فارسی یعنی ما ایرانی ها تو تولید واجه برای شیطان کل منطقه دست ماه کلمه دیو بوده دیو یا دعو در آین قبل از زرتشتی بودن ما آین میتراییسی ما با امان خدا می دونستیم. همین الان خدا به انگلیسی میشه چی؟ نه. پلیشه ای تر لاتین ته او ته او دو اسما ته دو همون ده اوه یعنی خدا ده او یا دیو یه کسی که جن زده بشه بشه چی؟ مجنون جن زده یعنی. کسی که دیو یا سراغش میشه چی؟ دیوانه که بینید شما اصلا یک مفهوم داره هرچند الفاظ عوض شده حضرت زرتوش که میاد که از نگاه حضرت امیرالمومنین پیامبره زرتشت نظر آقا هم اینه که زرتوش پیامبر بودی چن آقا امام صادق روایت داره میگه که پیامبر خودش صاحب کتاب نبود کتاب جاماث باورد خیلی جالب امام صادق نفس فارسی استفاده میکنن. جاماث جاماث اسمی بود چون تو فرهنگ ایرانی اصب خیلی ارزشمند بود نونم گشتاس بو نمیدونم یعنی اصلی که میگرده و جاماس بو نمیدونم تهم همین اینا که آسط در آخرش لو راست بونه این زیاد بوده جاماس پیامبر بوده که تو همین عراق کنونی بوده و فارس بوده زمان فارسی بوده اینو میگیرن میکشن و بعدا حضرت زرتوشت کتاب رو چیکار میکنه بونه پیامبر تبلیغی میبره حالا یا صاحب کتاب یا تبلیغ مهم نیست به جای اصلا بر نمیخوری مشکل ما دعوایی هم نداریم. جان ناس تو کتابش می وقتی زرتوش آمد گفت شما را چه شده است؟ ارواح خبیصه را می یعنی ما ایرانی قبل آین زرتوشی داشتیم چی می پرستیدیم؟ جن می پرستید بیوها را می و معمولا اینجوری بود وقتی یک دین جدید می اومد یا یک تمدن جدید می اومد خدایان تمدن قبلی می شدن چی؟ شیطانی یا تو اصل اصلها شما یه دارید متونی رو بررسی میکنید. شما کنید شما یه فیلمنا بنویسید میخواید فیللم بنویسید مجبورید باید باید فیلمنمتون رگگ های درست حسابی حقیقت داشته باشه اونجا که شکل رمان گونه می‌گیره و خیال پردازانه میشه می‌خواد پرواز کنه مرغ بال ذهن شما؟ بره سر به کشی این طرف اون طرف اونجا باید یه مبنای اقلانی داشته یه مبنای تاریخی داشته باشه اونو شرح و بس بدید دیوا ها بزرگیشن بوده یا آسورا بوده حوصه خیلی به هم تبدیل میشه تو زبان فارسی مثل آسورا میشه چی؟ اهورا یا سند هند دسیبل دسیمت شنیدی سیستمای ده دهی این ده خودمونه دست توی زبان بلوچی ما که از زبان فارسیه ه ندارم. باشی میگم میگن بیشتر میگن محتر یعنی چی؟ بزرگتر، کهتر کچکتر میگن مستر کستر همین اندار استفاده میشه همین اندار من دارم شما صحب نکنم همین کنم هم مستر که تو انگلیسی از همین گرفته شده مال ما یه ریشه واحد داره حداقل. اهورا احورا اسورا بزرگ یعنی اسمش این اسمش ایندیرا بود که همونز هم تو هند نام گذاره میشه مثل ایندیرا گاندی اسم شنیدید مازندران یعنی ماز ایندیرا آدی سپید پای در ونده‌ی گنبدی ای, ای, ای دماوند اصلا رستن حالا پس میفهم عجب رستن به جنگ با چی داشت می‌رفت تو خانه هفتم به جنگ با شیطان داره میره این چقدر زیبا میشه ماجرا ماز این دیرا آن همین تو همین دماوند می‌دونستم اما داداشام که رد بکنید دیگه بعد رینه تو دامنه دماوند آمل شروع میشه دیگه اینم آمولیا جای شیطانان داستان یعنی مازندران شروع میشه ماز ایندیرا آن اینا کلمه دوغا من بعض موقعا شنیدم بعضی از دوستان میان اینا رو غلط میگن اینا مازندران یعنی جایی که زنبور زیاد داره اینا درست نیست بگو این یه کلمه یونانی آخر خیلی از اسمار اوس میذارن میشن کلمه میسازن با خودش این ریشه فارسی شیطان مادرشون گفتن یعنی دیو و ساترن این ریشه فارسی یه ریشه ذاتی بین اون نهرینی هم داره. شیطان. مال اقوامی که زبانشون آرامیه. از کلمه بعل استفاده میکردن برای شیطان. چون اون برهه‌ای بوده که اینا شیطان پرست بودن، جن پرست بودن و شیطان رو صاحب اختیارن. بعل در زبان عربی یعنی صاحب اختیار. بعد‌ها به خاطر اون که توی به معنی شوهر هم استفاده شده در زبانه. عربی. الان در زبان ایبری همین الان بعل یعنی صاحب در عربی یعنی چی؟ شوهر و بعلوها و بنیها شنیدی با اولهن نه یعنی شوهر بعل رو اینو با موان ابلیس می دونستن کلمه ابلیس اوسیه که انتهای بعل اومده یونانی هر چی میگیرن آخری اوس میذارن میشه یه زبونی شنه بعضیه که شاهکار کرده مثل فرانسویه دیو از این ور گرفتن و علو اوس از اون ور گرفتن دیابلس درست کردن دیابلس تو زبان لاتین و فرانسوی دیابل یعنی شیطان. از تو چی در اومد؟ ابلیس ابلیس کلمه عربی نیست اما عرب ها خیلی از کلماتی که میگرن توش رویشه بیرون میکشن کار میکنن حالا ابلس به معنی ناامید شدن اینا دارن استفاده میکنن ایرادی هم ندارا نبای در مصر دوره خورشید پرستی رو هم میگم دوره خورشید پرستی تقریبا در تمام اقوام مساوی با جن پرستی بوده تقریبا گفتم آیه قرآن هم داره در مورد قوم کی استفاده میکنه یا از شمس که میدونه نه نه اصلا یا از شمس هم همین سراحت میره قرآن نه دیگه نیست میدونم اونجا میگه چرا استطرار میپرستی یه جا اصلا ویجه میگه یعب اسمش روشه بعل غیس بله اون بلغیس بله اونم یعبودونه شمس داشتن ببینه آقا رب برناگو داشت ما گوش شد خب بعل غیس ایزابل ایزا اینو ایزا پرا... کسایی بودن با بعل یعنی خدای خورشید بعل نماد خدای خورشید خورشید با عنوان شیطان پرستیده می شد این که تو فیلم ها اینا این همه تحکید روی خورشیده اینه این که توی ادبیات داستانیه این همه تاکید رو خورشید اینه این که سهیونیس اصلا سهیون یعنی کوه پر آفتاب اینقدر باز روی آفتاب و نور اینا بحث دارن از رو همین ریشه گرفته شد بله خدای خورشید نماد روی زمین شد شیطان نماد نور خورشیدی که به زمین میتابیدن برای اینا اهمیت میدادن که اینا رو من دارم صحبت میکنم فیلم برداریم زارم میشه منم با کسی خاص خودم ضبط میکنم بعدن برید خواهشن گوش کنید اینا رو بنویسید بیرون بکشید اون شاید الان تو ذهنتون، تو زهن من اما شما شد بعضیتون اولین بار بعضی از این را دارید میشنوید براتون منسجم نباشه و لازم اینا رو من تأکید میکنم اینا را بدونید اینا تو فیلماشون قشنگ اسم میبرن حتی بعضی ها میگن خورسی که در مصر به عنوان خود خورشید پرستیده میشده اونم باز به ما ایرانیا ربط داشته خور به منی چیه؟ خورشید خورس شد خدای خورشید توی مصر مهم نیست شباهت اتفاقی کلمه بوده اما در زبان عربی به شیطان چی میگن میگن شیطان اسمش چی بوده که میدونه حارس که همین حروسه پس بینید چقدر جالب این مفهوم شیطان چقدر گشته تو اقوام مختلف بعل دیو ساتن هرس برای تک تک اینا میگین که اینا دارن و اینا هم استفاده میکنن اون دوره خورشید پرستی برای اینها به عنوان یک مبناس و یه دکون هم درست شد تو کشور خودمون به عنوان مهر اون دین دستانه درست میان کلمه مهر بیش از حدش استفاده میشد من یادم یه بار از این مسئولین فرهنگی که خیلی نگاه خاصه جالبی داشین چیزا حساس بود یک بار اومد و ما دو ساعت با هم نشستیم بحث کردیم در مورد رفت مهر که کجاها داره استفاده میشه چیچاله نمیخوام هرجا مهر استفاده بشه من این خورشید داشه اتفاق حتی حالا مهر وجاش هه بذار میشه چی مصر یعنی به خاطر خورشید پرستی که توی مصر بوده این زمانی که هخامنشیان به اونجا میرن میگن داریوش میشه فرعون مصری از داریوش شمایل سنگ و کتیبه هست با شکل مصری هم اونجا میزنه گاوا آپیس اینا رو میکشه با خنجر میزنه میکشه شاکی میشه میگه اینه خلوچلو صبح تا شب میانه گاوی رو میپرسه گوساله ای رو اسم گوساله آپیس بده با خنجر میزنه میکشدش و کاهنا میگن اگر این زنده بمونه یعنی پایان دین ما هرجوری هست بعد داریوش چی بشه کشته بشه رو میکشن و میگن که دلیل این کشته شدنش توهینه به گاوا اپیس بود این گوساله آپیس بعدا همون گوستاله میشه که برادران بنی اسرائیلی میپرستن زرد زردنگ نماد خدای خرشید خب فهم بیشتر از این هم دیگه نیاز است روی ترمینالوجین رو بحث باشه من میرم روی اون کسه که امروز دارن روی دنیا شیطنت میکنن توی دنیا و نظرم خودشون رو میخوان یه جوری دنیا رو پیش ببرن روی ادبیات فکری اینا و مفهومی اینا کار کنیم صحبت کنیم تو راست و فقط مهوریت شیطان خوبه دیده هم میشه این کتاب پیدایش ترجمه کین که در واقع معروفترین و بهترین ترجمه است. و تقریم هم درسته یعنی همون این که به ابری ما من کتاب مقدس رو ابری هم بررسی میکنم که کلا سرمون نره. چون تو ترجمه خیلی ازียด کنه. یه خانم ژاپنی شیعه شده. یه چهار پنج روز پیش دفترم بودیشم هم صحبت می‌کردیم میگفتم من خواستم مسلمان قرآن رو به ژاپنی میخوندم بعد می‌اومدم تو با دیکشنری ترجمه می‌کردم. میگفت ترجمه قرآنی که به ژاپنی ما میخونیم کاملا وهابیه. یعنی وای بر جمهوری اسلامی که قرآن رو با ترجمه درست برای اینا نزاده. من نفس از مثلا و هم بر ما ترجمه کردن و هم ساجدون به ژاپنی. چرا؟ چون ماجر روکو و این داستان کلن حصف بشه روما اصلا یا جالب دیگه این که سوره ماعده آی شیش قرآن میگه وغسلو وجوهکم و عیدیهکم الال مرافق میگه قص بشورید صورتاتون و دستاتونو بعد میگه ومسهو به و عرجلکم الال که بایی و سرتون و پاتونم ها کنید؟ امسهو مس بکشید اون دو تا رو چیه؟ وخصلو. خوشیه خب بر مبنای همین آیه اوضو میگیره. پاهاشو نمی‌شورن، برادران اهل سنت می‌شورن. میگفت تو ترجمه ژاپنی اون یکم اغسلو بود. یعنی نوشته بود سرتون رو مس بکشید، پا هاتونو بشورید. سوره ماида ایشو تحریف کرده بودن. بخاطر همین این مجبور میشه بیاد دیگه شروع می‌کنن کلمات عربی چک کردن و همین تا میشه. یه عجب وینه چرا فقط اینا این پدر سوخته‌های وهابی دارن چیز میکنن؟ حالا این طرف هم این شیطنت داشتن اصلا محل بحثمون نیستش. یه جای شاید بحث شد براتون میارم. ما می‌خوام در مورد آفرینش شه تو و نقش شیطان یه خورده صحبت بکنیم بر ترجمه مورد تایید خود همین آیان. خدا میگه روز شش روز تموم شد و تو شش روز میگه روز اول فلان آفرید روز دوم فلان آفرید روز سوم فلان آفرید الان تو فیلم بحث داره میشه در موردش؟ تازه اومده بیرون. نو. درست روزها صحبت میکنه بر نه کتاب پیدایش صفر دومه. چی باب دوم. روز هفتم خدا استراحت میکنه خسته شده بوده. یه چرتي بخواد بزنه. تو همین چورته همه شو چو دستش کار دستش میده دیگه. میشه دستش میده. آیه قرآن داری میگه که خدا زمین و آسمون‌ها رو در شش دوران آفرید و به خاطر این کار خسته نشد. تا آدم تورات نخونده نمیفهمین این یه نیچه. یعنی چی. خدا خسته نشد. گفت خدا خسته میشه این چه حرفی خدای تو میزن؟ مثل جوابه اینا رو میده ما هزار تای تا آیه قرآن در مورد اینا 900 تا هزار آیه یک ششم قرآنم هم در مورد اینا است اما هیچ کی نمیدونه اینا کی ان یسالونکه عن الزلقرین اصلا در مورد زلقرین میپرسن یکی نه قربون این از کجا زلقرینات تو کلاشون در آوردن یهودی ها چرا لفظ زل چرا نگفتن کوروش مثلا ها من اینا مندن اینن اسوچیه گفتن زلغرنه کشی نیمده بریم این توی توباراتو بخونم این زلغرنه هست نیست چجوری این لفت چجوری استفاده میشه خلاصه ما بمیدن جام میگه روز هفتم فارغ شد خدا بعد دیگه زمین بارون بارید و این داستاناش بریم کنار تا و خداوند خدا آدم را امر فرمود که از همه درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نیک و بد نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هر آیانه خواهی مرد گفته تو این باق باش هرچی چی تو بخور فقط درخت نیک و بد نیک و بد یعنی چی؟ تشخیص تشخیص خوب و بد یعنی عقل یعنی علم علم که میاد آدم خوبت از هم تشخیص میده گفت درخت معرفت درخت عرفان درخت عرفه شناختن از این نخور و گفت اگه بخوری میمیری گفت بخو باش چشم. بعد آدم رو که آفریده بود از دندهش گرفت همین دیروزی که این دانشجو ارشدم میخونه اومده رو یه تحقیقی داشت صحبت آفرنش زن و مرد شد بعد یه گفتش که آره خودم مرد آفرید بعد از دنده مرد زن آفرید گفتم پسر تو چرا و پرت میگی؟ چرا گفتن آیه توراد خوندی؟ گفت نه باوزاری هم گفته تو با بی خود گفته، با تورات خونده رات خونده بوده این همین آیست و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و را به نزد آدم آن یعنی کلا موجود اضافیه اینجوری نیست شد چون قرآن اینجوری نیست تو قرآن اصلا شما می در مرد آدم و هوا فیلا مستنه استفاده میشه قاسم مه هما شیطون به هر دوتا اونها قسم داد ازن له هما هر دوتا را نیست. زن کلا یک موجود اضافی است دنده مرد این چرا حالا به دنده گیر دادن چه ماجرایی داشته بعد الله عالم. نمیدونم من خودش چه گیری به دنده دادن داشته گفت الله اینا پیشت باشه که تنها نشه و آدم زنش هر دو برهنه بودن و خجالت نداشتن لخت مادرزاد بودن اما خجالت نمی‌کشیدن گوسفند لخته خجالت میکشه؟ خروس مرغ خجالت می‌کشان نه چرا خجالت نمی‌کشان چون چی ندارن؟ تشخیص ندارن. پس دقیقاً انگار چند و خدا چه آفریده دوتا تا حیوان. غریزی هم میدونن از این میوه بعد بخورن از اون میوه نه بخورن. شما وایت تکست بریز رنگ آبجره رو گوشتبان بزاری که خود من اسمم आवाज بازم کنم. میفهمه انگار نمیخوره. غریزی است یه چیزا برایش گفت. چون میدون اگه بخوره میره. هر آینه خواهیمون سفر 0.0 و داستان شروع شد. این دارم از رونی خونم تا بتونید بیت فکریه پدر سوخته ها رو در بیرید ببینید از کجای اینا دارم و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت صافم رفت سراغ زنه چرا؟ چون زورش به مرد نمیرسید زن واسطهی برای وسوسه مرده تو تفکر توراتی و انجیلی زن به شرارته زن وسیله وسوسه است زن وسیله گناه و عامل گناه تو ادامه میارین آیاتا به زن گفت آیا خداوند حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید زن به مار گفت از میوه های درخت باغ میخوریم لیکن از میوه درختی که تو در وسط باغ است خدا گفت از آن نخورید و آن را لمس نکنید مبادا بمیرید گفت همه درختان رو میخوریم اینجوری نیست. فقط همین یه درخت گفته اصلا دستم بزنید مردید مار بزنگ گفت هرایین نخواهید مرد تو باب دوم خدا گفت بخورید خواهید مرد مار که اینجا شیطونه دیگه که متاسفانه این به عنوان هم به برخ از این روایت اسلامی وارد شد که خودش خودشو به شکل مار به پای تابوس پیچید اومد توی این که کلا می‌کشن توی عراق اینا ابلیس پرستن نگه بهشون میگن ملک تابوسی میگن اون ملکی که به پای تابوس پیشید رفت و بهش با ما رو نجات داد اینا اون نگاه ایزدی ها یعنی زرتوشتی ها آمیخته شد با این نگاه یهودی ها تو اون منطقه و یک فرقیشه گرفت که شیطان نه تنها نحس و ناپسند نیست بلکه محموده و پسندیده است و شایسته پرستیده پرستش من فیلم عکس اکسه جالبیم از اینا دارم از آدابشون و از بسومشونو چقدر جوقدی؟ آن بگیزدی، مال بسوم میس. پس این، ببینید، به مرور زمان برونداد این تفکر انحرافی رو شما ریز ریز این گوشه، این ور دنیا پاشیده میبینید. ملک تابوس، چه تابوس؟ بعدش آمادن. چرا گفتن تابوس؟ مایی که پاهاش میان زشته. هم شرور را و است نهی. مار به زن گفت هراینه نخواهی مد برکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیکوبت خواهید شود خدا فهمید گافتاده توفرینش شما یکی آفریده عین خودش قدرت این خودش خلیفت الله جانشین خودست فهمید گافتاده اومد چی کار کرد اومد دوتا از قوه هایی که خودش داشت و از تو وجود انسان درآورد، گذاشت تو دوتا درخت یکی فهم خوب و بد و معرفت به نیکوبت و علم که شد درخت دانش دومی جاودانگی و نامیرایی که از قدیم دغدغه انسان بوده این هم شد دوتا درخت اسلام هیچ کنیم چرتا پرتر قبول نداره اصلا شجره علم ما تو قرآن نداریم و علم الانسان هم آلم و علم الادم ما کله از اول علامه بودیم منطقه اون درختی که شیطان میگه العدل لکم میخواد آمارشو بدن بیاید بیارید بیاری تو قرآن داریم میگه شجره خلد یعنی چی؟ یعنی دائم بهشتی بشید خالد بشید ابدی بشید تو این نعمات ما با قرآن و آیات و روایات اون اثبات میکنیم که اون بهشتی که حضرت آدم و توش بودن به هیچ وجه بهشت اصلیه قطعا نبوده قطعا نبوده شما داریم که تو بهشت اصلی لغ و تعصیمی وجود نداره حرف بیهوده گفته نمیشه تا دلتون بخواد شیطان مزخرفات گفته تون با ما در روایات داریم که آدم و حوا طلوع خورش... غروب خورشید رو میدیدند اما بهشت طلوع غروب خورشید اصلا خورشید نداره لا شمس و لا زمهری رو. خب اصلا روبان اون بهش افتتا نشده بود سه چهار بهش خالد داره که به تو دست بیرون نمیاد دیگه پنج مگه این شیطون رانده نشده بود په چجوری دوباره اومد تو کلا سر خدا گذاشت و مکرون مکرون و لا رو ماکرین چی؟ یه جای توپ خوش آب و هوایت فرصت متالاتی داد با آدم و هوایت بریت حال کنید حتی از مفسران میگن همینجا رو زمین بوده. اگه خوش آب هوای خاص حالا ما اسرایی نداریم رو زمین باشه هر جا بوده بهشت اصلی اون نبوده اما اینه چیزی که میگه من گفتم قرانیش هم بدونید گفت میدونید که این خود خدا به مانند خدا میشید چون زندید که اون درخت برای خوراک نیکو و به نظر خوشنما به درخت دلپذیر و دانش افساس گفت این علم من رو زیاد میکنه پس از میوهش گرفت خورد اول خود اول این کسی که اوسیان میکنه بر حسی زن... بر هستی که زنه و به شوهر خود نیز داد و او خورد آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدن که اوریانن ببین نمیگه اوریان شدند میگه فهمیدند که اوریانن قران میگه اوریان شدند یعنی قبلش هم لختی و غیر لختی رو میفهمیدن یهودی دیدن لخ شدن خدا اولین بلایی که سر بشر اسیانگر میاره چیه بگید پوشش ازش میگیره خیلی عجیبه امروز دنیا دنیا این اتفاق میفته بشر وقتی به سمت گوش دادن به حرف شیتون میره اولین بلایی که سرش میاد گرفته شدن پوششه ستر از ستر اورتش برداشته میشه زشتیش آشکار میشه نکته جالبتر رو شما داشته باشید خدا وقتی میخواد اون خلیفت الله و اون پنجتا نمونه رو مثال بزنه میجمعشون میکنه زیر چی؟ زیر ستر پنجتن آله ابا کسا کسا در زبان عربی یعنی پوشاندن کسا و پوشش در قرآن پنج مرتبه تکرار شده و به غیر از پنجتن جبرئیل هم اون زیر بُرسه در حدیث کساء شما می خونید پنج تن آل ابا و جبرئیل قرآن و اطرتون زیرن عامل آمدن قرآن جبرئیل وسیله نزول واسطه نزول این طرفم اطرت و خیلی عجیبه رابطه عجیبی بین پوشش و انسان بودن و به حرف شیطان گوش دادن و پوشش را کنار گذاشتن خیلی عجیبه به زبان بی زبانی قرآن داره یک حرفه خیلی عجیب می اینجا میگه نه تازه فهمیدن لختن از اول لوخ بودن. دیدی که تو باب دوم آخرش میگه فن اوریان بودن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سطرها برای خیش ساختن و آواز خداوند خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نصیم بهار در باغ میخرامید. اینا برای چه سال 4 تا بغ برایشان خودشون خجالت میکشن دیگه تو تشخیص بده کاری. هیون این حیوان مثلا فکر نمیکنه نعوذ بالا. خودش تا بوشون نه خودم دست قدم میزد تو باغ. یه چچهایی هم دست میذار میخون خودش. ها چی میخونه من نمیدونم. بعد آدم بزنش خویشتن را از حضور خداوند در میان باغ درختان در میان درختان باغ پنهان کردند. اینام سری رفتن قایم شدن و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت کجا هستی؟ صدا کردن آدم کجایی نمینیم گفت چون آوازت را در باغ شنیدم گه از دور که داشه قدم میزدی می, زدی می اومدی. این تجسم خدا راه رفتن خدا که در وحابیت شما میبینید کاملا ریشه در یهود داره ریشه های فکرین رو وقت دادم بشنسه خیالش واحد گفت ترسان گشتم زیرا که اوریانم پس خود رو پنهان کردم اینجا رو گوش کنید خیلی جالبه خدا تازه دوزارش مفته گفت خدا گفت که تو را آگاهانید که اوریانی فکر کجا فهمیدی لختی تو که عقل و شعور نداشتی ک شماا ببینید یه حیووونی داره می یه پارچه ور رو خش پیش بگه زشته میتون کجا میفهمه گفت تو رو که آگاهانی که اوریانی آیا از آن درختی تو رو قدقا کردم که از آن نخوری خوردی؟ گفت تنها دلیلی که میشه تو به فهمی لخنی چیه ؟ سراغ آن درخته سری آدم گفت به من بطتی نداشتش کی بود؟ آدم گفت این زنی که قریین من ساختی وی از می بده که خوردم به من چرا بیده؟ اینا کجا باری بشه کنار ما؟ نه ما راحت بودیم بشه بهش غاله مونه میکرد بدبختی ما شروع شده است هم روزی که اینو بود پس خدا خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مراقبا کرد منم گفت گردنه چی؟ شیطون انداخ تو همین فیلم نو؟ اولش اصلا شروع میشه یه مار سبزی رو نشون میده پوستان لازم میکنه یه مار سیاه هست تو دلش میاد بیرون میاد بیبردش به سمت درخت سیب هوا سیب رو میچینه با آدم میده این سیب گاز زده مبنایش شد یعنی ما دانش رو به دست آوردیم پنجاه درصد خدا شدن رو رفتیم که بعدها شد آرم اپل یعنی دانش نم ببینید شما از این شرکت بزرگ من پشت سر این نمادشناسی اینا اینا چقدر دینی دارن فکر میکنن برخلاف که مثلا نگاه من شما اینطوری که آقا اینا ایش کافرن اینا مثلا دین ندارن اینا پدر سوختن نه اینطور نیست بسیار عقیدتی فکر میکنن پس این چطور قابل جامعه من به شما میگم دینشون شده کف ببین وقتی دین شما بشه کف شما پیرو با اون دین بشی میشه چی کافر وقتی دینت اجازه زنا بده، اجازه شعر خوردن بده، اجازه تادیب حقوق مردم بده، اجازه کشتن کودکان به شما بده. یک آدم پدر سوخته از خودش بره تو این دین. خیلی وقتا میگن آقا صهیونیسم یک عقیده است. ماتریالیستا؟ یه دینه، مادیگران، بود زمینن. چطور بین این دو تا اشتراک به وجود اومده؟ میگم عزیزم یهودیت تحریف شده، میگه دین من ماتریالیسم هست. یعنی همین زمینه، دنیا رو بگر. خدا پیغمبر معلوم معلومنی دنیا ما اصلا رو دنیا قرار جاودانه بشیم برای همین شما بری شخم بزنید تمام تورات رو اگر تونستید یک آیه معاد بر بنده بیارید یک دونه آیه در مورد معاد نداره همه رو حذف کرده آیه قرآن به ما این اشاراتو داده یا نداده ف تمن نبود موت این کنتم صادق. سه راست میگی داره مارک کنه. برخی جالبه خدا وقتی با این استفاده میکنه، عمدن هی دم از دماسیمی زنه. مرگ میگه ای پیغمبر بدون این پدر سختو هر کدوم دستان هزار سال عمر کنه. پدر سختن است این تفسیر منه. هر کدوم دستان هزار سال عمر کنن. از این خود باید بیرون کشید. آقا میخوای با جهود جماعت با سهیونیس جماعت در بیفتی دست صفر رو مارک. اینا میترسن از مارک. من مجید بولتنی آماده می‌کنی بر برخی از مسئولین می‌فرستیم شاید 100 تا هم نشه تعداد این بولتنه مورد رژیم سنگستی حالا محتواش چی و فلان چیزه بماند محرمان است مفتی هم براشو می‌فرستید فقط بگیرید بخونه بدین دشمنتون چی کارو کلام هزینه می‌کنی باواتش عجیبه دیگه به جای اینکه به مؤسسات بدن مؤسسه دارن به اینا کمک می‌کنن از میجی‌های آخرالزمان در جمهوری اسلامی نشونهای آخر و زمانه دیگه خدمت شما عرض بکنم که جالب توی همین جنگ اخیر در غزه خیلی از سربازهای اسرائیلی پاشون تیر خورده بود با گله اسرائیلی چی بود ماجرا؟ خودشون به خودشون تیر میزن تو بیا نخواه که کشته نشن اینا رو برایشون نعره هیدری بزنید از کشتنشون بگید تمومن قبلی که بکشی کشته شده یا رو میمیره خودشت ترس قرآن اینقدر تأکید کرده روی اینا آقا پس فرده میخواه شما مستند بسوزی از اینا جنازه هاشون این چیزهاش نشون بدهی اصلا به خاطر همین سانسور بسیار جدی تو رسانه سوری در مورد تعداد کشته ها و اکس کشته ها اینا وجود داشت حتی تو این برهه که که اینجوری بچه کشی میکردن و داشت عکس و پخش می شد به نفع اسرائیل بود که از این جنازه ها این جو چیز هم چکار کنه؟ نشون بده یه یاقا مشک های هم کشته نشون نمی دو حدل مقورشونداد چرا این کار میکرد؟ می گفت اثر منفی که در داخل بر ما داره خیلی بیشتره مهاجرت معکوس بر عزیزم گرفتی چی شد؟ یعنی میتونی یه مستند بسازی از پنجاه تا موشک ا گذارتر یه مستند بسید در مورد توان موشکی جمهوری اسلام خیلی هم بیترفانه بگی آقای این گمهد آهنیتونو تو جنگ اولی جنگ هشت روزه فقط یک سوم موشکار زد آمریکا آمد اینو تقویت کرد دو برابر کرد درسته؟ باز هم چی شد؟ اوضا بدتر شد حارس میگفت یک هفته موشکار میتونست بزنه. یک هفتم موشک موشک‌ها یعنی از هر هفته یه دونه زده اگر ایران 700 تا موشک برز رو کله شما 100 تاشو میزنه 600 تا تو, تو وسط کلهتونه اونم راکت دیگه نیست شهاب 3 که یک تن فقط مواد منفجرمیشه میتونه خوش منتقل کنه همین همین کلیب بشه براینا تموم باور کن بلد نیستن به خدا کار کنه. نمیدونن این دشمن نقطه ضعفش کجاست قنته ز بسته زنگو خلا. خدا اومد چیکار کرد از این من میدم چیکار توی شیطان پدر تو ماره پدر سوخته از این به بعد کلان باید دیگه سینه خیز را بری یعنی چیکار کرد خدا پاهاشو گرفت یعنی قبلش ماره پا داشته اینجا پس خداوند به مار گفت چون که این کارو کردی جمعی جمیه بهایم و از همه حیوانات سرام ملعون تر هستی بر شکم از راه را یا تنبیه نظامی تا آخر عمرت سینه خیز بری زنرم اس گفت نمیدونم درد زایمان میدم به تو نمیدونم یه کاری میکنم که اینا بزن گفت الم و حمل یعنی درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم با علم فرزندان خواهی زایید اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو اوکرانی خواهد کرد گولش زدی از نعمت هوشمانی با آقایونه تو هم اصلا میل به او داری میل اون شرط پرتوچه مرد هم بزن میل داره زنم به مرد میل داره نم داستان نه خلاصه این اتفاقات افتاد و خداوند خدا نعوذ بالله که اصلا شما می‌بینی توی اینجا یه اتفاق افتاده. ما توسط وسوسه شیطان یه ارتقا گرفتیم. مثلا شو چی شد؟ ما علم به دست آوردیم. خدا چیکار کنه؟ این چه فکری برای خودش میکنه؟ بعد یه کاری یه چیزی پیدا کنه دیگه. طابه فکر کنم خب نگاه کنید خیلی مهمه ها همین امروز بر مبنای اینایی ندارن تو اروپا حکومت تشکیل میدن شما فکر میکنید حکومت کافر بر دنیا حاکمه بازی خوردید پشت این کفر و الهات، یهودیت تحریف شده نشسته و اون تحریفی که در دینش کرد همان کفر و الهاده پس یهودیت چی گفت؟ گفت من خدای روی زمین میشم خدای آسمون ماله خودت زمین ز حد اقل خواستم الان ما این خدا شدیم فقط یه ایراده دیگه مونده چیه اون؟ ما میمیریم خدا؟ نمیمیره اگر بتونیم اینو برطرف بکنیم یک اتفاق میفته تازه الان بخش امدهی از این سریال ها رو براتون باز میکنم و فیلم ها رو باز میکنم تازه دوزاری شریف میفته آها آه آه این اونه صحبت بخیر چه اتفاق افته؟ اینکه خدا یه دونه است ما چقدیم حداقل دو تا تون روز تولید مثل شروعه. فهمی چی شد؟ حداقل دو تا. الان هفت میلیارد تو. میلیارد خدا روز تعداد ما هم از خدا بیشتره خوب دقت کنید. درست ما تک تک می میریم، اما آدم هست. ما نامیرایی یه مثال میزن شما یه پیکانی داشته بابات. ازای 142 بود اومد پیکان توی ایران همون ده چل بود کنم دیگه مثلا ازای پنجه رفته پیکان خریده آقا رفته جاده چاروسی یه تصادف خیلی بد کرد اتاق ماشین کلن عوض کرد بعد یه مدت گذشت موتورش رو عوض کرد چرا آقاش عوض شد الانی که ازای خب هیچ چیزی از اون پیکان اولیه توش نمونده کلن عوض شده فرض بزن. آ کسی به شما به بابا شما میگه یه ماشین جدید خریدی؟ نه. همه میگن چی؟ همون ماشین بزاس خرید خریده است. اینا اینو میگن. میگن درست آدما میمیرن. اما آدم هست. و روز به روزم داریم چی میشیم؟ زیادتر میشیم. میتونی جلوی اینو بگیر. و ما آدما متحد خواهیم شد. این بار ما به تو حمله میکنیم. میایم درخت دو میرم به دست بیارم خودت هم میکشیم پایین یعنی جنگ با خدا این این هم تو کتاب باشیم و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود همه به یه زبان عرف می ساتن همه بچه هزت آدم بودن و واقع شد که چون از مشرق کوچ می همواری در زمیرش انعار یافتند. اینا کیان؟ بچه قابیل ماجره حابیل و قابیل که برید فیلن نه حتما نگاه کنی من وقت ن این ک تایم خیلی مهم تره. خب خو؟ خودتون برید ببینید همین داستان ها رو میگه. به اصلا فیلم نه دقیقاً بر مبنای این ساخته شد بر مبنای این 11 باب اول تورات. برید بخونید 11 باب اول توراتو رو. دقیقاً بر همین مبنا ساخته شد و یک مش مزخرفات تو این که فیلمها پیغمبر اولو العزم نشومه ده لخت ما زاد افتاد رو زمین، پسرش میاد یه پارچه میکشه روش. انقدر عرق میخوره. انقدر ماس می که دیگه حالیش نمیشه لخت. این نقطه سا لخت بود با دانش رسید دوباره پوشون خودشو بعد با واسطه مشروب ما میتونیم دوباره به گذشته بگردیم یعنی اینو کیسا که مدن تحریف کنه الکی نه من گفتم این چرا میگه دنده و بری کار کنش و چرا گیر داده اینجا این چی چرا حضرت نو میگه پسرش لخت دید روش پوشوند میگه این که عرق خورد نعوذ بالله یا مثلا داریم که حضرت لوت حالا یه جلسه میون در مورد تحریفات کین تو کتاب مقدسه چون درسنامه‌تون نوشتن از ما خواスタン براتون بگیم درسنامه‌ام خود دوستانتون تنظیم کردن بنده نکردن ما هم تابه اون درسنامه خواهیم بود اصلا داریم حضرت لوت عرق می‌خوره انقدر مس میشه و هر دو دخترش زنام کن و از اونها اقوامی شکل می‌گیرن که یکیشون میشه جد کی یعنی ببینید یه گندی زدن که با سد تا آب زمزم هم پاک نمیشه و در آنجا سکنا گرفتن و به دیگه گفتن بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپذید ببین آدم عقل پیدا کرده دانش را الان و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ. ببینید دانش جدید رسیدن نیگه بیمید یک برژی بسازیم بریم بالا عبرای یارو رو میش پایین؟ کیو؟ ناوز بالله خضر استدلال اینا میگن خدا کجاست؟ بالا ابراص همین آیه قرآن داره ها میگه فرعون چیکار کرد؟ گفت یه برجی بسازیم بریم اون بالا پس میفهمیم این مزخرفات رو اینا از چی گرفتن؟ از اون بره که تو مصر بودن این ها تو ذهنشون بوده این مزخرفات که خدا ولی ابراص بعد که حضرت موسی اوماد و نمیتونه اینا رو درست حسابی سرمنزل برسونه به زمان و مزخرفاتی که در آینه باستانی مسعود آوردن تو کتاب مقدسش اون درخت دومی دو هم بالا ابروس ما میریم ببخشید به واسطه درخت دومی نامیرایی میریم خدا رو میکشیم پایین میکشیم خدایی که نمیذاره شیطان به ما خدمت کنه شیطان ما رفیقه ما میبینیم که شیطان بابت این فرشته الهی از نظر اینا بابت این کاری که چه خزینه داد خودش کارش کرد اخراجش کرد و اون فرشته های دیگه هم داداشاشن، بردخواهراشن، خیلی هاشون. این رو اخراجش کردن. و شیطون حالا با با داره به انسان کمک میکنه که بشه خدا. شیطون داره به روی خدای بلفعل سرمایه گذاره میکنه که با قدرت بعدی که تو آینه داره سر کار میاد ببنده بقیه فرشته ها رفتن با کی؟ با اون قدرت اولیه بستن. اینا که دارم بهتون میگم این اتفاق های همش همینه. مبنی فکر گفتن این کارو بکنی گفتم بیایید شهری برای خود بنا و برجی را که سرش با آسمان برسد خب میریم سواریم برجه میشیم میریم خدا رو میکشیمش پایین مبادا بر روی تمییم زمان پراکنده شیم گو مراقب باشید فقط پراکنده نواعد بشیم بزنیم مبادا با هم چی باشیم متحد باشیم اتحادیه بین ما خیلی مهمه تو بتون خدا رو بکشیم پایین خدا آنتی اینو زد ضد اینو پیاده کرد ضد استراتژی ببین چیکار کرد ما خداوند نزول نموت از اون بالا نمیتونسته ببینه میفهمید؟ خدا که باید بیاد پایین بره بالا. تو کجا هست الان این روز؟ میاد پایین؟ خدا شبا میاد زمین قبل طول فجر میره بالا این عقیده ابن تیمی هست. ابن تیمیه هرانی. بابای وحابی هست. نباده بر روی تمام زمین و خدا بند نزول نمود تا شهر و برج را که بنی آدم ملا... بنامی کردن ملاحظه خدا اومد پایین برج اینا رو دید ترسید. گفت اینا چه اینا شروع کردن ساختن ما بیفیورز بیخیلش... چی زیاد شدن اینا یوی دوتا تا بودن چیکار کنیم چیکار کنیم گفت همانا قوم یکی گفت اینا همهشون یکی شدن و جمعی ایشان را یک زبان اون زبونشون و این کارا هم شروع کردن قوم اینجوری از تو تر تسویب و مصوبات و اینجا شروع کردن کار ان ریختن آجر و خشت و فرغون و اینا ریختن دارن می‌سازن بالا این برج میشه برج چی بابِل دیگه بایدیم. الان هیچ کاری که قصد آن بکنن از ایشان منتظر نباشش یعنی هر چی بگی الان از دست اینا برمیاد دیگه اینا بسازن بیان بالایی من چیکار کنم دور منو میگیرن دیگه منو خدا میمونم و اینا منو منم سرنگون میکنن نعوذ خدا ببخشید مرا اکنون نازل شیم اولین کاری که خدا کرد چی بود با زبان ایشان رو در اونجا مشوش سازیم تا سخن دیگر رو نفهمن اولین کاری که منو خدا بکنم بعد یه کاری که اینا زبانمو یکی تورکی هر بزنی اینکه عربی، یکی فارسی، یکی فیلیپینی، یکی حوسا، یکی نمیدن چی چی از اینا. تفرقه بینداز؟ بگید. پس تفرقه انداختن کاری که؟ خداست. تو این نگاه. بشر باید به سمت اتحادیه پیش بره. خدا میخواد جلی اتحاد بشر رو بگیره. بعد چیکار کرد؟ زبون اینا که جدا شد، بین اینا سوء تفاهم به وجود من. خدا برشون جنگ ان گو هم دیگر تا میتونید بکشید که قدرت نگیرید عامل جنگ ها هم که خداست از آن سبب آنجا را بابل نامیدند زیرا که در آنجا خداوند لغت تمام اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمید دلیل تقدس بابلی که الان تو عراقه اینجاست و ما در روایات داریم که امیر المومنین از بابل رد می شدن حضرت فضیلت نماز اول وقت و عقب النوختن گفتن اینجا نباد نماز. اینجا جای نماز است؟ رد شدن اونجا عجیبه ها که یه روایت هم نیست. دو سه تا روایت من دیدن که وقتی حضرت اینطور فهمدن فرمودن میگن که خیلی انقل تاوردن تنها کسی که صداش در نیامد مالک بود. مالک پشت سر حضرت گفت هر علی بگی پشت سر حضرت میگه حالا این این از پیدایش سام چون سام صد ساله بود ارفکشاد را دو سال بعد از طوفان آورد ارفکشاد یا ارفخشاد پدر بزرگ حضرت ابراهیم یعنی جد حضرت ابراهیم ابوالانبیاء هم بهش میگن خب اینا این داستانا رو همیشه خیلی داستان مدل داستانه اما من مرادم این نیستش که بخوام بیام برای شما یهو داستان میگم اما بحثم سر چیه سر اینی که این تبدیل شد به ای ادبیات فکری حالا شما خودت میپرسید بابا اینا خدا چی میگه؟ خب گوش کنید. بخواه براتون جابی افتایی اگه حل بشه. خیلی از مطالب دیگه درست اتفاق خواهد افتاد. بزید من اینجا به اینه بتونم پیدا کنم. شما یه خورده چشات ها میچه خیلی. چی... چیانیه چیزی که توی لبت ها من... بولدر بشه یعنی دوش متمرکز شدم چون بعض از سیاسیونم اون من اینجا دیدم اسمشون رو گفتم شما قبل اینکه ببینید خودم بردارم اینجا موضوع سخنرانی میشن بعد یو میشن سخنرانی ما ایرانیا نژاد عجیب غریبی داریم خوبمون خیلی خوبن هم. بعدمون هم واقعا باور نکردین جونور هایی هم داریم که اگر سادر کنیم میتونن یه حکومت رو کلن کنن یه که اینا مثلا بفرستید آمریکا کلا موتور آمریکا رو میپن. اما تو ایران ما میتونیم اینا رو چیز کنیم کنترل کنیم باشیم زندگی کنیم مثلا عجیب غریبه واقعا برام جن چه جنیه نمیدونم. ن می‌تونم این فایل و این فولدرم امتحان کنم. من نوکت‌تر من رو تو درخت اول پس شغل درخت دانش، درخت دوم الان همون درختی که کشتن خودش رو تو فیلمش درخت دوم شده درخت کابالا رسیدن به جاودانگی با توجه به ارثانی که یهود بدياد میده. یهود این عرفان از کی گرفت؟ نه از جبریل و نه از میکایل، از فرشته دیگر. بال شیطان. جبریل و میکائیل بر پیامبران وحی میکردن اون هم یه فرشته بود و این فرشته بر افراد دیگری که موازی پیامبران بودن وعده خدا ثابت شد که دروغ بود خدا گفت اگر بخورید میمیرید شیطان گفت بخورید نمیمیرید کی راست گفت شیطان راست گفت دوتا فتوه اومد و سده ای آقا برینه اونی که راست گفته بود شیطان بود حالا باید با کمک شیطان رفت و به درخت دوم رسید و با آن درخت دوم به جاودانه گیرسی درخت دوم میشه درخت کابالا درخت کابالا ده تا می بده خیلی کوتاه من کابالا رو توضیح میدم به درتم میخوره چون خیلی اینا تو همین عربا حلقه ها و توی این هری پاتر رو اینا خیلی به اشاره میشه به درخت کابالا یعنی اگه مثلا شما دقت کنید خیلی قشنگ فیلم می‌سازن خودش یعنی تو این دکور تو اون در و دیوار که دارن رد می‌شن مثلا همه چی پر این درخت‌ها مثلا من می‌بینم گوزشتنا و فلان درخت کابل 10 تا میوه داره 22 شاخه 22 تا شاخه معادله 22 تا حرف زبان عبری الف بت جیمل دالت ابجد ها وز هاوز همین ابجد هاوز خودت کلمه‌ات صفح از قرشد تا اینجا میشه 22 تا عربی چند تا عروف اضافه ترده اصلا میدین اصلا عبجت حوث و تیکنه من درشت مدل حولف الف عربی اوناست عربی عبتسه الف با تا سا این شکلی تا یا آخر خدمت شما آرز بشم که اینا توی این درخت کل اهداف خودشون رو میکنه. از کتر که تاج پادشاهیه و حکومت روی زمینه میریسی به ملخوت. ملخوت یعنی همون ملکوت. ملکوت یعنی بالای ابرا. با این درخت شما اگر شروع کنی از پادشاهی روی زمین میریسی به بالای ابرا و خدا رو هم میتونی می حسب کنی. و رقیب اصلی رو حسب کنیش خود شما بر همیشه میبینی. شما با یه درخت بری بالای ابرا خدا رو سر کنی یاده چه میفتی؟ درکول روی سر. و خدایی که اون بالا چیا بر خودش قبضه کرده؟ طلا، موسیقی، خوشبودن و طلا و غنا مال خودش نگه داشته دوست نداره به بشر بده. ما به واسطه کمکی که عزازیل به ما میکنه، میریم طلا و با تشکیل و حکومت روی زمین و موسیقی که خدا در چنگال خودش نگه داشته میره. اصلا ما داریم که یاران دجال در آخر زمان این روایت حرامزادگان خیلی جالبه یهودیان پیروان غنا یعنی پیروان غنا رو در حد حرامزادگان و یهودیان میره تو روایت میگه اینا پشت سرشن. اینا پیروان اصلی اون هم. گم شد کلا من <تصفيق> چه بلای سر شما پیدا نمیشه حالا ایرادی نداره اینجا اینترنت دارید من از اینترنت میگیرم یا دارید که خیلی خوبه علامت زردی هست اینجا عرض می میخوام رو درختش ببرم من رو بگم خیلی خوب متاسفانه بعضیش اصلا میگی اسامی ای نی این که ین این که اونه حالا بذار ادامش هم بگم بعد ما حالا قرار به جابدنه چیجی جابدنه بشیم بیاد ایده بدید آقا ما میخوام روی زمین جابدنه جابدنه یی یعنی انت چی؟ این یعنی خیلی عمر کردن چیکار کن خیلی عمر کنیم نه بیش ناد واقعا حتی بیش تخیلی بدید ایرادی ندار. اکسیر جابدنه گی برم یه چیز رو پیدا کنیم بخوریم مثل آب حیات مثلا ها بریم بگریم پیدا کنیم که همیشه خدمت شما عرض کنم اون همراه اون باش و با. نصف یه روش دیگه هم سهر چیست دم اگه دیگه دیگه چاره دیگه. خوب اعنایت داشته باشید نکته دوم که مهمه میخوام دقت بکنید روی این بحث بیایم زمان رو بست بریم تو فیلماشون کم داریم بریم تو گذشته هی hey, می‌خوام بمیریم هی hey, برمیریم هی hey, میخوام بمیریم هی میخوام برمیریم چند وقت پیش داشتم داشتیم فیلم نشون میداد یه موبایلی بود ده دقیقه برمیگردون به یه گروگانگیری تو اتوبوس بود هی hey, این پلیس کشته میشد هی این hey, برمیگردون ده دقیقه عقب خب میگو بابا این دفعه اینجا از اینجا چجوری میخواد بزنه فکر کنم 20 بار یارو تا اونجا نجات بدن و تو بانکو توی این تفکر اینا ببینیم چیکار بکنیم بیایم خیلی عمر کنیم یه جور دیگه یعنی چه جوری اینم چه اتفاقی افتته که باور کنید این ایده در حد یک چیز تخیلی است و داره اجرا میشه ببینید یک از فیلسوفا میگه من شبی در خواب دیدم پروانه بغیشو شنید میگه از کجا معلوم که پروانه نیستم که در خواب میبینم انسانم شما وقتی توی خوابی تشخیص میدید خوابی خیلی وقتا نه خیلی وقتا نه دیدید احساسات توی خواب چقدر رقیق تره توی خواب براتون یکی جور تعریف میکنه میمیده در خنده بیدار میشه جوکه یادتونم بگیم چی این داشته میخوندید از یه جا میفتی چه حس وحشت مکتره بله به خلصه رفتن پیشنهاد اینها برای جاودانگی شما به خلسه میرید در خلسه میتونید خیلی عمر کنید یه فیلم برای من بگید انسپشن که چه توی فرینج چه توی انسپشن شما از یه ماده استفاده کنید که خوب به خلسه میرید این همیشه مواد مخدر جدید و توهمزا و تخیل آور. قرآن در مورد اون اصاهایی که اجده ها شد مار شد جل حضرت موسی قرآن میدونید چی میگه میگه یو خیلیلیلی من به آی سلخشور گفتم گفتم مبادا اینا رو اصاها اجده ها بسازید اونا اصاها اسا... رو مار میدیدن مار نشده بودن سیمیا شده بود چشاشون اونا مار میدیدن وگرنه هیچ چیزی مار نشده بود دقت کنید من نکته اینجا از حضرت موسا تا اصاش و انداخ مانه تو زنمین که یه اجده شد شروع که مارا رو خوردن خلاص اون مار میدیدن یه مهمه باشه قبول تا اصاش و این شد اجده ها ها شد واقعا رفت سمت اونا مردم چی دیدن؟ مردم دیدن یه اجده داره چی میخوره؟ چوب و تناب میخوره نمار یعنی جا الحق زهقل میتره اصلا معجزه حضرت موسی اومد سیمیا اینو باطری چو دن اه یه مش تناب بوده اما این کماکان چیه اژدهاه شروع کن یعنی خیلی از حضرت آیت الله جوادی هم روی این نکته تاکید دارن که این ها شد اونا چوب شدن هنوز نیومده سمتشون اومد چوب و تناب خورد این بره بره خلا شما مینی تو این خواب که تو این رو میسازن این میره یه لایه دوم خواب لایه سوم خواب لایه چهارم خواب همینجوری چی میشه فرصت ازیستم بعد اونجا براتون ضرب و تقسیم هم میکنه درسته؟ دیدید؟ میگه اینقدر بعد اون چینیه دیدید توی تاپ چقدر پیر شده یه شونجا صورتش چروک شده و فلان بعد توی خواب هیچ وقت شما نمیفهمید بالاخره زن این واقعی بود یا نه هیچ وقت متوجه نمیشید که همسر این که تو خواب این میدید واقعی بود یا الکی بود چیچی بود داشت میدید حقیقت داشت خواب بود اون بچه ها خواب بود یا نه شما توی این خلصه میتونی برای خود چی داشته باشی زن داشته باشی بچه داشته باشی پولار باشی سوار ماشین شی عشقه تو بکنی نگه بده توی این خواب میخوام به اینها خوب دقت کنی یه پرده میرم جلوته آیا ما فیلمی ساختیم با این, و... با این شکل ساختیم خیلی بده یا خوبه به نظرتون کسی تو ذهنش نیست؟ بلند بگی؟ یه فیلمی که تو خواب طرف پولار شه، اشغال کنه، زن خوشگل داشته باشه، ماشین تو خوب داشته باشه. یه فیلم این فیلم های درجه دو درجه سه، که تا دل تو میخواد چیز پخش میکنه. شاید که نمایشی پخشش میکنه. آقای دو پهلو. که نکته جالبش بود. این که این دو پهلو میرفت تو خواب لباساشو عوض میکرد تو اون خوابه پولدار میشدیه بیدار میشد لباسا تنش بود فهمی چی شد؟ لباسایی که با زن پول دارش بود تنش بود این زن بدبخت پیچارش بهش گیر میداد این را کجا آوردی؟ آقا رابطی جنسی هم میتونه داشته باشه؟ بله. این دیگه چطور ممکنه؟ در خلیصه طرف اینطور رابطه جنسی داشته بشه بعضی افراد هستن در خواب می‌بینن رابطه جنسی دارن با کسی حتی آقاین محتلم هم میشه اینا ما کتاب از اینا داریم لیدیان رد فکر چی تو سینما اینا دار استفاده میشه میگه شیاطین جن بیان تو خواب با شما رابطه جنسی هم داشته باشن این رابطه جنسی خیلی خوب یعنی تو عرفاناشون داره اینو ارائه ای میده تو همین عرفان آقای پاولو کویلو یکی از چیزایی که آموزش داده میشه و یاد داده میشه همینه رابطه جنسی با اون کسی که تو دوست داری حالا نکته جالب چیه کسی که میخواد یه با یک فردی مثلا از کنم رابطه جنسی داشته باشه خب اون فرد کیه اون کسی که تو ذهن تخیل میکنه قبول دارید کسی که تخیل میشه بهترین شکلی که آدم خودش دوست داره مطایشه چی شد؟ این یکی از استوره های ایناست خیلی هم پیشنهاد میدن این کار میکنن ببلن استوره ببلن سکارلد وومن زن سرخبوش میگه این از رابطه جنسی فولار بودن و فلان. تو خواب که داری کف میکن توی فیلم آواتار طرف برای که یه آدم فلجی بود یادتون باشه فوقالا دست. آواتار باید حتما ببینید. سنت اصلا. فیلمی اصلا. خب. یک نقطه عطف تو سینمای جهان. آواتار وقتی این مرده فلجه. تو خواب می‌بینه کجاست چگار داره می‌کنه تو خواب پرواز میکنه. دیدون سکانس که سواری موجودتی هستن. بال دارن. بالا میاد پایین. ببینید فلجه اینجا نمی‌تونه راه بره. اونجا چه اتفاقی برش میفته؟ اینقدر شیرین و براش دوست داشتنیه که حاضر نیست از خواب بیاد بیرون تا میاد بیرون دوباره چکار میکنه به بهانه دیگه میره تو خواب و این آرزوش اینه که خودشو برسونه به اون شکل و به اون خواب و با اون میاد هی hey, مواد بیشتری مصرف کنه بیشتر تو اون دستگاه بخواب میگه بابا تو بیا از دنیای خیال استفاده کن اصلا پیشنهاد شیطان دنیای واقعیات و عقلانی نیست. چون که عقل بید جای او از بمیره میاد این استفاده میکن اگر برای مرد زن بفرسته زن رو قرمز ترسی میکنن تو فیلماشون اگر برای زن مرد بفرستان مرد رو چی ترسی میکنن؟ آبی رنگ تو چه فیلمی؟ واتشمن واتشمن فکرم سه ساعت فیلمه 245 تا سه ساعت تو اونجا یک موجود آبی تکچیش نشون میدن که این زن رابطه جنسی داره و این زن رو عضو میخوام از منظر شما مثلا لمس میکنه بدنشو نه با دو تا دست با چهار تا هشت تا دستای زیاد یعنی میخوام دیگه اصلا ما الگوی رابطه جنسی ما بهتون میدیم این از رابطه جنسیش بعد چقدر توی خواب شما ممکنه تو یک ساعت خواب یه روز خواب میبینی پیش اومده براتون تو ده دقیقه یک کاری انجام میدی تو عالم باقی انگاه مثلا دو ساعت کار بوده دیگه بس زمان. میگه بیا تو تو خواب زندگی کن دنیای واقعی رو ول اینم جاودانه شو دیگه هزار تا زندگی کن دو هزار تا زندگی کن سه هزار تا زندگی کن خام این خواب مزخرفه هی. چیزی که این خواب اصلا صحت حد این خواب چیزی نیستش که بخواد مثلا خدمت شما عرض بکنم به درد کسی بخوره اما اون میاد این پیشنهاد رو آدم میده از چه طریقی برسیم با اون درخت حیات اون درخته جاودانگی درخت علمیستی که درخت حیات تراو لایف، درخت های فیلم ساختن با تو خود فیلم و آواتار اصل اتفاق کجا میفته دور همین درخت دیگه به واسطه همین موجودات چی؟ آبی رنگ اینا چی هن؟ جنا خدا گفت به واسطه ملائک ابلیس میگه به واسطه یه جن ما تو اسلام تفکیک اینا رو می‌دونیم این بدبختا نمیدونن فکر میکنن جن همان ملکه است. آیه قرآن داره؟ بله. آیه شریف قرآنش هم بیارم از رو با هم دیگه بخونم که خیلی هم شیرین و جالبه و خوب و تأمل برانگیز که چقدر قشنگ قرآن همین چیزا رو به ما گفته و متأسفانه ماها خود خواب تشریف داریم. ما شوخم زدیم لپ‌تاپ اون رو پیداش <تصفح> نکردیم نه پیداش کردم اونم درخت حیاتو میخواستم حالا چاره‌ای نی اگر پیداش نکردیم دیگه مجبور می‌شیم روش شما استفاده کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و یوم یحشرهم جميعا ثم یقول للملائکته ا هؤلاء ایاکم كانوا یعبدون روزی که همه یحشورهم جميعا همه رو جمع میکنیم همه هشره سمه ی قول. میگه للملائکته به ملائکه میگه چی؟ آها اولایا کم کانو یعبدون جمله استفامیه آیا اینا شمار میپرستیدن؟ پس پرستش چیه؟ وسط یعبدون پاسخ ملائک جالب تره میگه اینا ادعا میکنم و جن ما فلشته داریم میپرستیم آیا این درسته؟ قالو سبحانکه انت ولینا من دونهم خدای تو پونزعی. تو ولی مایی ای اینا ما با ولایت تو عهد بستیم نینا بلکانو یعبدون الجن اکثرهم به هم مؤمنون دروغ هم میگن اکثرشون هم میدونستن جنه اما یه اقلیت واقعا فایم کردن جن و فرشته چیه؟ یکی فیلم کردم فرشته دارم میپرستن اما اکثر هم به معاملین ایمان هم داشتن که جن نمیدونستن پس پرستش جن شکل میگیره تو بشریت و اینا به واسطه یه جن میگن ما میشیم خدا خدا گفت بیاید به سمت من فرشته هامو گذاشتم کاراتونو انجام میدن و واسطه اصلش خود توی که خلیفتو اللهی همه در اختیار تو اند جن و انس بر تو باست اجزه کنن منطقه اینا میگن ما خدا میشیم به واسطه کی جن نیاز. ما به پیغمبر نیاز نداریم این جن ها پیغمبر ما این موجودات آبیرنگ اسمشون چی بود تو فیلم ناوی ناوی در زبان ابری یعنی نبی یعنی پیغمبر گو اینا پیغمبرای ما نه اونا اونا اصلا قبول نداری اصلا پیانبران اینا مسخره میکنن سوژه تمسخر اینا پیامبران الهی اصلا اینا با پیامبران کاری ندارن پیامبر کی از نگاه اینا یه همچین تفکری آرام آرام نهادی نمیشه حالا جهنم چی با خدا میفهمن اولا گفتن که یه آیه در ما ماواد دوم اینکه لاف دوم خدا جهنمه لاف اول این بود که اگر این, درخ بخورید می میرید این درخت بخورید میمیرید میبه بین درخت بخورید لاف دوم خدا این چه خدا اصلا از بیخ و بنیان خالی بستن عوضو بالله اصلا خدا قدرت به جهنم بردن شما رو ندارد نگران نباشید هیچ کاری نمیتونه بکنه این موجوداتی که به عنوان دیمن اینا تو ادبیات فکرشون استفاده میکنن همه جا، علاوه بر سینمایی و غیر سینمایی و فلان، هر که مفصله. به عنوان بیلو جین بلو دیمن ازش یاد میکنن و خیلی هم استفاده می مثلا توی کابالا نردبان ایران میگم نردبان داوود. حالا اینجا نوری خورده زیاده من اصل اکثر رو میدم توی ف... اگه فیلم برداری درست میشه بذارم توی امی... اصل این. اینجا موجودات آبی رنگی رو شما میبینید که از این پله‌ها دارن میان پایین. و ارتباط برقرار میشه داود اگر پیغمبر شده به واسطه چی بوده جن اینا کومکش کردم تو سلیمان به واسطه چی جن اینا میگن همینه و این راز بزرگ اینا مثلا راز خیلی پیچیده و این اینا خیلی هم نشونه های مختلف استفاده کردن محل بحث من نیست اینا اینجا همینم هم آبی رنگه جای مختلفی گیر از بلو جین شواله اصلا تو تمدن‌های های مختلف که با هم هزاران کیلومتر فاصله داشتن استفاده شده و این نشانه هایی که دارن این زن قرمز مرد آبی بلیدین رد بلومن مرد آبی و توی بازی هاشون تو کارخانه حیوله ها بود تا امین نشونه تکچش بودن آبی بودن این تکچش بودن هم از مصر باستان گرفته شد دیگه تو مصر باستان هروس تک چش میشه به چشش کور میشه و هروس همون خدای خورشیدی که بعدم چه شیطان هارس که عرض کردم الان این موجودات جنن اینا الان اینا با عنوان چه اونبانی دارن به شما یوفو چقدر اینا دارم فیلم میسازن در مورد یوفو این فیلم چی برخورده نزدیک خب یک بار دیگه بشینید این فیلمو نگاه کن من وقت ندارم یعنی وقت نمیدونم تحلیل بکنم از این نگاهی که من دارم به شما از این زاویه که من به شما میگم نگاه حتما این فیلمو ببین این فیلم سه بار سانسور شده نه سانسوری که ما میکنیم ما با خاطر مسئله اخلاقی نه خودشون سانسور کرده داره. این فیلم فیلم خیلی عجیب غریبیه تو این فیلم منجیخاهی بشریت در نظر گرفتنش. و نشون میده که همه جاهای مختلفی آدمای نقل میکنن یه کسی رو دیدن یه ارتباطی بوده آخر آخر این فیلم میگه چی این ارتباط چیه ارتباط این است چه سایه که تو جزیره رو روبوده شده بودن از سفینه پایین نمیدونن فلان یه اینا فضاییان و همینه دارن با این عنوانن یه فرقه درست کردن مثل رائلیسم رائلیسم تو این فرقه اینا ما انسان مثل بقیه حیوانا بود بوده یه موجودات هوشمند اومدن رو زمین، تغییرات ژنتیکی در اینا به وجود آوردن. بعد چی شده؟ شده انسان. یه قانون اساسی هم براشون گذاشتن که دیگه نخورن، تیکه پاره نکنن، شده چی؟ کتاب های دینی‌شون. شد. شده تورات، انجیل، قرآن. و این پیغمبرا کسه بودن که با این موجودات فضایی در ارتباط شدن. جاهای به تمام آخر و زمانی ازه من با مدل آخر شیعه‌ام زمانی هم میگم کجا این فیلم خیلی جالبه. زولتان کودلی رو می‌خوان چک کنن. کاغذ روش نمیشه زلطان کدلی خب اسم اما خیلی قش کلمات کنارم همیدهشه زولتان سلطان کد علی خب میشینه کنار همدیگه میگه بر مبنای که گفته یه سالن همایشه همه این جللو نشستن تمام اساتید میخوان زبان اشاراتی که این موجودات فضا آمدن به همه آموختن بیان دنبال یک معنای یه یک نخه تصویبی به نه همین رو بگن یه معنای مشترک. بعد اون طرف اون بغل بدون هیچ دلیلی چهده نفر رو نشون میده که نشستن اون گوشه سالم اون سبت. ودارره اینار رو تماشاگر اون سکانس سکانس شیعیه آخر و زمان شییه دان بررس. آخر زمان اهل سنت هم برث میکنه مثل ها هم بررسی میکن یا اوی رو بررسی می همه رو میگهن. تو اون سکانس چهده نفری که نشستن دارن مردم و نگاه میکنن تا ببینن میتونن حل بکنن یا نه نظررهگرری اینن سکوت مطقم بر هیچ حرفی هم نمیزن. جالبه تو این چهده نفر یکیشون زنه سیزده تا مردن و زنه حجاب داره این زن هجاب داره اون هم نشسته داره نگاه اولین و آخرین اینا قیام کردن حکومت تشکیل دادن اولین و آخرینشون وایست دادن پوزیشن شکل خیلی هم شبیه همه اون تا. میدونید دیگه امام زمان ما را وقتی بشه یه فرصت دیگه چون تو درسانتون تو نیست خب در مورد مهدویتی که اینا دست گذاشتن و شورای اخیرا داره میپردازه روش، اینا به امام زمان میگن محمد دوم. ان یعنی اصلا به اون شکل مهدی که تو ذهن من و شماست، اصلا تو کتاباشون به عنوان محمد آخر میشناسن. یا محمد اول یا محمد آخر. میگن این دو تا محمد کار خراب کنه. بعد جلوی اینو ایستاد. تو تفکر این کابالیستا خودشون برای آقا رسول الله مشکلات به وجود آوردن؟ فرزندانشون هم و خان جلو مثلا ظهور بگیره حالا میشن چه با همون دجال و اون سیستم صهیونیستی که میخواد جلوی امام زمان بیست. میرن تو پاکستان یه عده یعنی لفظ راجنا راجا همینا دارن تکرار میکنن به زبان پاکستانی یعنی بیا همه دستشون به هم سمت آسمون گرفتن بیا بیا بیا میگن این منجی که اینا منتظرشونن آدم فضایی منجی هم باز یکی از خود ما هست توی آواتار شما مثلا میبینید بازیای مختلفی هستن اسمش مستر د جین لفظی که ابری برای جن استفاده میشه جینه جین. ریشاش که با عربی دیگه انیمیشن‌های های مختلف بلو دیمن یعنی فکر نکنید چیز من در آورده کاملا وجود داره و اینا اعتقاد دارن یا توی انیمشن مگامایند اینا مستقاری دارم میرم که برای اون مطالبی که عرض کردم سه چار تا مستق تا ببینید هست زیاد فراونه این که از آسمونیت موجود آبی رنگ میاد و نجات دهنده است میگامند یعنی ابر مغز کسی که دانشش چی داره فراوان داره همون کسی که اصلا دانشو به ما ارائه داد گفتید اینجوری دانشمند شید علامه شید فینا این تو فینو واچمن میگامند و اله اینم اینن از این کتاب ملعون آلیس کرولی گرفته شده آلیس کرولی با یه جنی توی معبد خاپوس ارتباط گرفت بعد عکسش رو با زغال کشید 1904 تو کتاب لیبر فصل اولش میگه میگه من با آیواس ارتباط گرفتم اسمش میشه آیواس بعد کلی حرف میزنه والا الوشت... یه چیزایی دریغریای به این وه کرده به این کرولی که متاسفانه اون شده قانون اساسی سهیونیزم جهانی یعنی خیلی از جنگ‌ها و کشمکش‌هایی که رو انجامینات دنیا بر مبنا اون کتاب 1904 میگه که دو تا ساختمون بعد ساخته بشه خراب بشه به بهانه اون ادمای کشته بشه این کتاب دارم از اون ساید چهار حرف میزنه. میگه این, می می این برج که ساخته خراب میشه در عوض اون برجی که خدا خراب کرد. خدا میگه که برج بابل چیکار میکنه؟ رد و برق میفرسته؟ با سائقه نابودش میکنه هم تو کتابشون هستا؟ نابودش میکنه و کلی از آبیلیان رو کشته ازشون میگیره. اینا میگن عوضش ما برج خراب میکنیم. یه چیز هم از آسمون میزنی بهش از یاران تو آدم میگیره. پس حالا بیاید ده سپتام رو یک از زاویه جدیدم ببینید. البته زاویه کسایی که دنبال نفتنم توش زاویه دید اون که دنبال نفتنم تظاهر کرده شده است. او میگه تو میخوای آقا یک... میگه تو یک دنبال نیست اتفاق تو آمریکا بیفته به بهانه ایران به هم افغانستانم بکنی. درسته نه؟ میگه خواهش ازت میکنیم این اتفاق این شکلی بشه. نمیتونی تو مترو باشه؟ ها؟ به نظر شما اون ساختمون بم گذاری میشد، خراب میشد، پذیرفتنی تر نبود تو که هواپیما از آسمون بخوره و این ها داستان داشته باشن و نتونن اثبات کنن چون الان فنون مهندسی میگن چرت و پرت رو دیختن ساختمون. چرا میان کار خودشون دیوانه سخت میکنن؟ اینو ما نمیفهمیم، چرا چون نمی نمیشناسیم. اینو چه مزخرفاتی تو ذهن اینا کتابش هم من دارم، خواست وقت بتونه نشو میده. این عینن میاد میشه آمین که مگامایند و منجی بشریت این هم که کنارشه الله، مثلا منجی شریت یعنی مسیح یا مهدی. که جالب اصلا این کارتون با چی تموم میشه دیدین انیمشن و کس... کیه دیدن خب با چی تموم میشه آهنگ یه سنیه این م... مگامایند آیواز شروع میکنه آهنگ زدن این بالا و جالب خود این بابا تریش در آورده خود ریش در آورده خب توی جم داره خودش هم گیتار دستش گرفته داره میزنه یعنی او هم شیطانو میپذیره بالاخره مونج انسانی که شما دارید بخواد بسازید خب پس حالا بیاید بگید اینا مش کافرن دارن ان انیمیشن میسازن نه آقا اینا عقیده نیست پوششون هم, هم همش اتفاقی دیگه ای خداوکی اینا کسایین که توهم خوشخیالی دارن والله در مقابل توهم و توته این ور میسا توهم خوشخیالی دون ویزا از این ور بمافتن چطور خوش در حالی که فاکس نیوز میاد برنامه میسازه تو برنامه آقای گلمبک و از اول تا آخر صد بار میگه 12 امام میخواد بیاد 12 امام, 12 امام 12 امام مستند برنامه زنده نه که فیلم و انیمیشن و نمینام بازی اینجور چیزا مستند این عقیده فکر اینه شیطان کمک ماست ما به جاودانگی خواهیم رسید فعلا برای رسن به جاودانگی جسمی فعلا به این جاووزانگی چی؟ خیالی بسنده کنید و به خلسه رفتن و با شیاطین رابطه داشتن تو فیلماشون هم دارن پیشنهاد میدن تو انیمیشناشون فرامون دارن میسازن این مچلای هم مچرم تو کشور ما میرن کپی برداری میکنن نمیفهمن اون که غربی که ساخته چی اینجا چی فیلم چیزو دیدید هوش مصنوعی فوق است این فیلم فوق العاده زیباشه چه داستان گیرایی داره خدا بکشه ادم میخکوب میکنه آخر فیلم چیه؟ ماجرا آفرینش انسانه. ماجرا اون حسادت است. یه روباتی ساخته شده به بچه اصلی اون زنه چیکار میکنه؟ حسادت میکنه ماجره پینوکیو یک بار دیگه زن نمیشه حضرت یونس و داستانش میرن وسط که تو پینوکیو میره تو شکم نهنگ، شکم ماهی و انسان میاد بیرون. انسان میشه بعد اون. همینا رو می‌کشن. آخر داستان چیه؟ این میره تو اون زیردریایی تا بره به پری دریایی آبی رنگ برسه. وقتی میره اونجا یعنی به واسطه گرفتن الهامات وقتی اونجا میرسه در مقابل اون قرار میگیره و شروع میکنه ذکر گفتن و زنون زهب و مغاز و آفزن لن نقدر علیه فناد و آفز ظلماتن لا اله الا ذکر یونسی شب میکنه ذکر گفتن و بعد دنیا نابود میشه کل وقیان چی میشه؟ یخ میزنن فضایی میان فضایی ها میان اینو پیداش میکنن میارنش بیرون بعد میگن چی میخوای این عاشق اون مادر غیرواقعیشه چون این ربات بود دیگه اما تونستدن یه سری احساسات رو درش بگذارن این یه تارمو از مادرش کنده بود قایم کرده بود گفت اگر چیزی از او داشته باشی ما دوباره میتونیم اونو برگردونیم رستاخیزم پس میشه چی؟ یک علم ژنتیک که شما یک اثری از طرف دارید ولو یه دین ای میدی با این سللو بنیادین اینجاستان دوباره بر میسیید جالب اونجاست این وقتی پایینه این بالا از بالا این مجزس فضه دارن نگاهشه تلویزیون خودم دوبله کرده به بهترین شکل ن همکن نیستش نیست ا نمیفهمند دارن چکار میکنن من اصلا نمیگم اینا رو پخش نکنن من با تحلیلش بفهم اون یا روکی اون فضاییه چه اومد این بالا یه همین جریان رایلییسمه و همین خدایان رو در مورد همین جنین معرفی کردن بعد میگه چی می میگه که اینو میخوام, میخوام مادرم میخوام زنده دوباره اون رو خیلی دیالوگ سنگینی، اینجوری میچرخه میگه بهش بدید اصلا آدم علی یوسف الله یاد آیه قرآن میفته بهش بدید فرشته هاش میگه کاری هم را بیفته. ها یه تو روایت داریم که آقا خدا به فرشته ها میگه وقتی بنده اینجوری راز نیاز کنه و اینجوری کنه و گریه زاری کنه خدا بهش میگه بهش بدید همون اینقدر قشنگ یکی از رئیس اوناست بر برمی‌گره خیلی بد شکل و دراز و باریک اینا. برمی‌گردیم که بهش بدید اون چیزی که میخواد مادرش برش برید. و این یه لحظه می‌بینید کنار مادرش توی تخت دراز کشیده و مادرش براش بره. می‌گه راستاخیزم هم همینه. اینا دوبله می‌شه تلویزیون ما پخش بشه. خوبه دوبله بشه. مثلا حرفم این نیستا. مونتا کنارش چی باشه؟ منم نیاورن خدا شادت اگه من حرفم اینه. خدا رو شاهد گرفتم. یه بابایی رو بیارن خب بگی آقا این ماجرا اینه داره گفته میشه. اصلا اون سکانسی که این روباتر رو از بین دارن میبرن انسانها اینو میبندنش به سلیب دقت کردی بعد سنگ بزنن به این کجاست ماجرایی که بر مسیح پیش میاد. میگه هر کس گناه نکرده به مریم مجزلیه سنگ بزنه میگه این گناهکاری میخواهند سنگ کنه مریم مجزلیه رو میگه هر کس گناه نکرده تو اینجیر میگه به این سنگ بزنه و همین وضومی همونجا دوباره تکرار میشه میگه همین مسیح و خدا و داستان همه همتون همینه بعد بیا بگو اینا مشخص کافرن شیر فیلسوفا چهره بر چهره میگه برادر من سواد نداری نمیشناسی لاقل حرف نزن بگو نمیدونم شایدم هست بر مبنای کتاب مقدس بر مبنای تورات داره درسخته میشه و ول... اصل عقیده اینا اینه که خدا نمیتونه ما رو جهنمی بکنه داره لاف میزنه همه بحثه و من اون نتونستم پیدا کنم اون برج و این داستانا شما فقط برید توی اینترنت بزنید جلسه بعد پیداش میکنم یادم بنویس اول جلسه بعد یادم بنویس پخش میکنم براتون که اصل بحثش اینه که شما برج بابل شده نمادی برای اینها برای باز دوباره جمع شدنشون و خدا رو پایین کشیدن شما توی اینترنت بزنید شباهت برج بابل و پارلمان اروپا مثلا پارلمان اروپا برج بابل است که دوباره ساخته شده و روزی که این کامل بشه دوازده سبت ونی اسرائیل دوباره دور هم جمع میشن خدا رو پایین میکشن این چون دنبال ده سبت گمشده خودشون میگردن. یعنی هر موقع دوازده سبت کنار رو هم جمع بشه. میدونید که الان میگن ده سبت کجاست؟ چینه. برای همین چین باید قدرت اقتصادی بشه. حالا وقت شد اینم توزید. سلاوت این هم